بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداونده بی اندازه مهربان نهایت باره صاد با قرآن والا مرتبه و که این کتاب حق است اما کافران گرفتاری سرکشی و تفرقه جویی ای اصل اصلهای را که پیش از ایشان بودند حلاک گردانیدیم چون عذاب ایشان را فرا گرفت فریاد می زدند. اما آن وقت موقع خلاصیشان نبود و از این درش گفت شدند که از میان خودشان بیمدهندهی و ایشان آمد و کافران گفتند اینجا دوگر بسیار است. آیا وی ای همه خدایان را خدای یک دا قرار داده؟ این واقعا چیزی شگفت انگیزیست و کلان شویندگانی از ایشان یعنی قریش رفتن و با خیش میگفتند بروید با پرستش معبودان خیش ثابت قدم باشی این واقعا چیزیست پیش بینی شده ما هرگز چنین چیزی را در این ملت واپسی نشنیدهیم این افترای بیش نیست آیا از میان همه ما به او وحی نازل شده است؟ واقعیت امر این است که ایشان در مورد این وحیمند بشک افتادند بلکه هنوز طعم عذاب را نچشیده. آیا خزانه های مرحمت پروردگار صاحب قدرت منی و بخشاینده ای تو در نزد ایشان است؟ یا سلطنت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست از آن ایشان است؟ اگر چنین است پس به این وسایل بالا شود؟ بلکه ایشان لشکر تباه شده از احزابند پیش از ایشان قوم نوح عاد و فرعون صاحب مراتی کو پیکار پیامبران را تکذیب کردند و نیز سمود قوم لوط و مردم عیکه همه این گروه ها. واقعت واقعیت این است که هر یک از ایشان پیامبران را تکذیب کردند پس عذاب بر ایشان ثابت کردید اینها نیز جز آواز مرگزای را انتظار نمی که هرگز برای آن مهلتی نیست گفتند پروردگارا برای ما بهره عذاب را از روز حساب پیش انداز به گفته‌هایشان هایشان شکی باباش داود بنده صاحب دسترس نیرومند ما را بیادار او واقعا سخت و بکار بود بگمان کوهها را مسخر ساختیم تا با او شامگاهان و صبحگاهان به تسبیح بپردازند و مرغان را نیز به گونه یک جایی مسخر ساختیم همه برای او بازگردنده بودند، همه به دور او جمع می شدند. سلطنت او را مستحکم ساختیم و برایش همه حکمت ارزانی کردیم و هم قوه افاده روشن که آیا داستان خصومتگران و تو رسیده است؟ چون ایشان از محراب بالا رفتن انگامی که به خبر بر داود داخل شدن و داود از ایشان ترسید گفتن مترس داواگرانی هستیم که یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده است پس در میان ما با انصاف حکم کن و ستم من و ما و ما را برای راست هدایت کن این برادر من است که 99 میش دارد و من تنها یک میش دارم با من گفته است که آن را نیز به من تسلیم کن و در گفتگو بر من غلبه کرده است داود گفت واکن با خواستن تو بر افزونی میشهایش بر تو ستم کرده است و ای بس از شریکان که برخی بر برخی ستم می کنند جز کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادن و ایشان بسیار اندکند و داود دانست که او را آزمودیم لذا از پروردگارش آمرزش خواست و با فیروتنی به درگاه خدا روی آورد برای او این عملش را بخشیدیم بگمان برای او نزد ما مخام والا و بازگشت نیکوست ای داود ما تو را در روی زمین خلیفه گردانیدیم پس در میان مردم به حق حاکم کن و از هوای نفس پیروی من و ما. که تو را از راه خدا منحرف میسازد. کسانی که از راه خدا منحرف می شوند بیگمان برایشان اعذاب شدید است به سبب آنکه روز حساب را فراموش کردم آسمان زمین و آنچه را در میان آنهاست بیهوده نیافریدیم این پندار کافران است که گمان می کنند همه چیزها بیهوده باشد پس وای بر کافران از آتش دوزخ آیا آنانی را که ایمان آوردند و نیکوکاری ورزیدند مانند کسانی قرار میدهیم که در زمین دست به طبع کاری میزنند یا پرهیزگاران را در صف بدکاران قرار میدهیم؟ این کتاب مبارک است که آن را به تو نازل گردانیدیم تا مردم در آیات آن بیندیشند و تا خیرد از آن پند گیرند و به داود سلیمان را دادیم چی بنده خوبی؟ او واقعا به درگاه خداوند بسیار رجوع کننده بود چون در عصرگاهان به وی از پای سیل و رهوار عرضه شد گفت و من محبت این از اسیل رهوار را به خاطر پروردگار خود دوست می دارم تا از نظر ناپدید شدند دانگاه گفت آنها را به من بازگردانید و دست به ساخها و گردن‌های آنها کشید بیگمان سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی را افکندیم و سپس به درگاه خدا بازگشت گفت ای پروردگار من مرا بیامرز و برایم چنان سلطنت عطا کن که بعد از من به هیچ کسی نسازد یقینا تو بسیار بخشاینده هستی پس باد را برای او رام گردانیدیم تا مطابق فرمانش به آهستگی و نرمی به هر سو که می خواست می رفت و شیاطین را هر معمار و غواسی را و گروهی دیگری از آنها را در غل و زنجیر قرار دادیم این است عطای ما پس می خواهی منت بگذار یا دست بگیر عطای به حساب واکن برای او در نزد ما قرب و سرانجام نیکوه است یاد کن بنده ما ایوب را چون پروردگارش را تا کرد به اینکه شیطان مرا بر رنج و عذاب افگنده است گفتیم به پای خود زمین را بکوب این چشمه آب سردیست هم برای غسل و هم برای آشامیدن به او خانواده او و نیز همانندشان را به حیث مرحمتی از جانب خیش عنایت کردیم و تا این پندی باشد برای مردم هوشمند. و گفتیم این بسته سیخ و جاروب را به دست خود بیر و با وسیله آن وی را بزن و سوگند خود را مشکن بگمان او را شکی آیستی چی بنده خوبی او واقعا به درگاه خدا روی آرنده بود بندگان ما ابراهیم اسحاق و یعقوب را بیادار این مردم نیرومند و صاحب بینش را. بگمان ما ایشان را به اخلاص برازنده که همانا یادوری روز قیامت است برگزیدیم و بگمان ایشان در نزد ما از برگزیدگان برازنده اند و اسماعیل یسع از الکیفل را بیادار همه ایشان از برگزیدگان بودند این یاد است و بگمان برای فرهیزگاران فرجام نیکوست بهشت های جودانی که دروازه های آنها برایشان گشوده است در آن تکیه اند و انوای میوه ها و آشامیدنی ها را فرا خوانند و از همسران پاک دامند و همسن و سالی برخوردارند که نگاه خود را از دیدن بیگانند نگه اند. این از پاداشی که برای روز حساب به شما وعده داده میشود. این است روزی که از جانب ما ارزانی می شود و آن را پایانی نیست این است سرانجام نیکوکاران ولی بیگمان برای سرکشان بدترین سرانجام است دوزخی که در آن داخل می شوند پس چی بد آرامگاهی است این است سزای سرکشان پس آن را بچشند مایع جوشان و چرکین و جز این سزاهای دیگر گوناگونی به همین و تیره برای شان تطبیق می شوند این فوج است که با زور و با فشار با شما به دوزخ وارد شونده در این حال پیشوایان گمراهی می گویند به ایشان حضور خوشایندی نیست بگمان ایشان به آتش دوزخ در پیروان آید می گویند بلکه به شما نیز این حضور خوشایندی نیست این شما بودید که این عذاب دوزخ را به ما پیش کردید و چی بد قرارگاهی است می گویند هر کسی که این حالت را با ما پیش آورده برای او عذاب دوچندان را در آتش بیافزه و می ما را چی شده که مردان را نمی بینیم که ایشان را از اشرار می آیا ما ایشان را به ناحق به مسخره می گرفتیم یا چشمان ما ایشان را نمی بیند برای فی شدن جار و جنجال خسمانه اهل دوزخ حق است بگو بگو من من جز بیمدهندهی نیستم و جز خدای یگانه بیشار غالب معبودی نیست پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست صاحب قدرت مونی و آمرزگار، بگو این خبر بزرگی است که شما از آن روگردان هستید من از عالم بالا هینی که با هم گفت و شنود می کردند آگاهی ندارم به من وحی نمی شود مگر برای اینکه من بیندهنده آشکار می باشم وقتی را با یاد آور که پروردگارت با فرشتگان گفت من بشر را از گل می آفرینم رنگامی که او را برابر کردم و در او از روح خود دمیدم با او به سجده افتید. پس تمام فرشتگان همگیشان سجده کردن جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود خداوند گفت ای ابلیس چی چیز تو را از سجده و با کسی باز داشت که او را من خود آفریده ام؟ آیا تکبر کردی؟ یا به پندار خیش از جمله موجودات برتران بودی؟ ابلیس گفت من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای گفت پس تو از این یعنی بهشت بیرون رو بیگمان تو از درگاه من رانده شده ای و تا روز قیامت لعنت من بر تو دوام دارد ابلیس گفت ای پروردگار من پس مرا تا روزی که مردگان می شوند مهلت دی؟ خداون گفت حقا که تو از مخلط داده شدگانی تا روز معین و وقت معلوم ابلیس گفت قسم به عزت تو که همه ایشان را گمراه می گردانن. مگر بندگان مخلص تو از ایشان که بر آنها سلطه ندارد روان گفت پس این از سخن حق و من سخن حق را می گویم که یقینا دوزخ را از تو و از همه کسانی که تو را پیروی کنند پر می کنم بگو من از شما در برابر تبلیغ حق پاداش نمی خواهم و من از تکلف کنندگان نیستم یعنی شما را به امر پیچیده مکلف نمی سازم نیست این قرآن جز پندی برای همه جهانیان و بیگمان شما به واقعیت آن بعد از متتب پی میبرید